عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أفتدوا نهمين باب أز أبوب سهيد مفرات باب ليجتنب الوجه في الضرب كسي خسکتک بزنه از باب تعدیب چه فرزندش چه بردهش و کنیزش پرهیز بکنه از صورت زده پرهیز کنه چنانچه در حدیث قبلی هم داشتیم چون صورت انسان مکرمه تکریم شده و الله باره تعالی حرام کرده از زدن از صورت یعنی کسی بخواد از صورت کسی بزنه حتی کسی بخواد از صورت خودش بزنه چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کردن و بکنن ل منظره بالخدود و شق الجوب کسی که سر صورت خودش بزنه از ما نیست یعنی از ما مسلمانان و مؤمنان نیست نفی ایمان ازش شده که یکی از نصوص وعیده و نکوهش و دلاغت بر شدت حرمت این کار رو داره چه از صورت خودت بزنی چه صورتی کسی دیگه چون گفتیم صورت مکرمه و جلسه گذشته پیرامونی مسئله صحبت کرده صد و سی اومین حدیث حدیث بحرر رضی الله عنه وغفر الله له پیام گیر رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودند: "اذا ضرب احدكم خادمه فليشتني بالوجه" یعنی کسی خدمتگزار خودش، برده و کنیز خودش را کتک زد، از زدن به صورتش پرهیز بکنه سیلی نزنه، حق سیلی زدن نداری. از صورت پرهیز کنید از زدن به صورت پرهیز کنید. بلی. قال رحمه الله حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسما يدخن من خراه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه سادوا السيويكم الحديث حديث هذا حديث صحيح هذا حديث جابر رضي الله عنه كمي قياد مرن نبی صلی الله علیه وسلم به دبه از کنار حیوانی رسول رد میشه قد ما داغ گذاشته شده اون حیوان یدخن و من خرا یعنی دوتا سراخ بینیش داره دود ازش در میاد از اون شکنجهی که شده با اون داغی که گذاشته شده بر بدنش یا بر صورت شاهران گذاشته شده چنان اشاره میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم در می حدیث میاد لعن میکنه اون کسی که داغ بزاره بر صورت حیوان این حیوان از بس که اون راهنه یا اون فلز داغ بوده بر صورتش گذاشته شده از دو تا بینیش دود در میاد میگه بعد اونجا رسول الله صلی الله علیه و چنین میفرمایند لعن الله من فعل هذا الله لعنت بکنه کسی که چنین کاری کرده یعنی داغ گذاشته بر صورت حیوان کسی که این کارو کرده الله لعنتش کنه گفتیم از نصوص بعید سخته یعنی از رحمت اللهی دور باشه این شخص لعن الله من فعل هذا الله لعنت بکنه کسی که جینکاری کاری رو انجام داده لا يسمن احدون الوجه کسی داغ بر صورت حیوان نذاره ولا يضربنه و کتکش اب نزنه حیوانه ممکنه که فهم و درک نداره که انسان بخواد کتکش بزنه مثلا انتقام بگیره یا مثلا بخواد حدی رو تا مسئله هست مسئله اول رو صورت چه برای آدمیزات چه برای حیوانات؟ حرام به اتفاق حرام به اتفاق هرچن که بعضی ها گفتن که برای حیوان که راحت داره برای انسان حرامه ولی خب صحیح تحریمشه هم برای حیوان هم برای انسان و این حدیث نسه بر تحریمش در حیوان نسه سریحه لعن الله من فعل هذا الله لعنت بکنه کسی که ب صورت این حیوان این داغ رو گذاشته وقتی که بر صورت حیوان داغ گذاشتن حرام شد بر انسان چی میشه؟ از باب اولا حرام میشه اما غیر از صورت داغ گذاشتن برای علامت گذاری خصوصا درسته و مشکلی نیست و جایز هست و خود رسول الله هم صلی اللہ علیه و سلم این کار رو انجام داده میاد حدیث شاهیم خود و در انسان محل اختلاف حالا خصوصا بحث داغ گذاشتن برای درمان. حضرت رسول الله صلی الله علیه و نهی کردن از داغ گذاشتن و خودش هم داغ گذاشته رسول الله اصلا برای اصحابش در جنگ داغ گذاشته. ما در همین عالما هم میکنن اون احادیثی که در نهی اومده از باب اینکه انسان شانسشون امتحان بکنه. انسان شانسشون امتحان بکنه. شاید الا این دردش خوب شد شاید این پادردش دردش خوب داغ میذارن. این حرامه. اما از باب تبابوت، از باب تبابوت طبیب میدونه که درمانش این داغ گذاشتنه. اونجا جایزه و خود رسول الله صلی الله علیه و سلام چنین کاری را انجام دادن هم حدیثی که در صحیح مسلم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلام داغ بر بدن ایون گذاشتن از باب اینکه مشخص بشه از باب اینکه گم نشه یا کسی اون هیون رو اگر دزدید مشخص بشه که این هیون مالکیه حدیث حدیثی که داریم حدیث انس رضی الله که میگه دخلنا علی رسول الله صلی الله و سلام مربدا و هو یسم غنمه وردا گوسفندی راصل الله سلسله چطوری میگم که رسل الله سلسله داره داغ میزره بر روی حیوانای خودش. قال احسب و قال فی آذانها روی گوشش داغ میزش. در روایت دیگر مدر رئیت ویا در رسل الله سلسله المیسم وهو يسم ابن الصدقة. اون شرطی که از زکات دریافت کرده بود رسل الله صلی الله علیه و آله داغ میزش. حالا بر بدنشون چه دگوش داشته جای دیگر الحادیث قبلی اون گوسفندو بر گوششون داغ میزش. پس داغ گذاشتن. بر بدن حیوان مشکل نیست و این فعل خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده خصوصا در حیواناتی که از باب الزکاة میگرفتن تا که قاتی نشه با کسی و کسی بیاد ادعا بکنه اون مور رو برای خودش بله قال مؤلف رحمه الله باب من لطم عبده فلیعتقه من غیر ایجاب حدثنا آدم قال حدثنا شعبه قال حدثنا حسین قال سمعت هلال ابن یسافن يقول كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن رضي الله عنه ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها هشتادومين <تصفيق> باب زباب صحية مفرات باب من لطم عبده ولی اعتقه من غیر ایجا کسی که سیلی بزنه بردش رو یا به صورتش بر رخصارش بزنه با کف دستش رسلال قدیم فارسی بهش میگن تپانچه زدن بر صورت تپانچه بر صورت فلانی زنی سیلی زد ولی خوصا تو ترجمه قرآن قدیمی هم میاد فسکت وجه و قالت عجوز و نقیم مثلا تو این ترجمه این آیه میاد که ساره با تپانچه بر صورت خودش زدنی با سیلی از یعنی محکم بر صورت خودش کوبید کسی برده اش کنیزش رو سیلی بزنه کفارشیه گناه گناهه چون رسول الله صلی الله علیه و حرام کرده الان تو ظلم مرتکب شدی ظلم سختی هم در حق اون شخص توصیه رسول الله صلی الله علیه و آله چیه که اون برده آزاد بشه حقش که آزاد بشه حق اون برده است که آزاد بشه حالا اینجا امام بخاری رحمه الله یک پرانتزی باز می‌کنه میگه من غیر ایجا واجب نیست امر رسول الله صلی الله علیه و در این بروجوب نیزبه که بر سحباب چرا دلیلش ذکر خواهد کن سد و سی دومین دو حدیث از حدیث سهی مفرد حدیث هلال ابن ایساف حدیث هلال ابن ایساف میگه کنن نبیع بز پارچه هست میگه پارچه هایی رو میفروختیم در منزل فیدار سوید ابن مقررین در منزل همین صحاوی سوید ابن مقرر میگه فخرجت جاریه یکی از اون کنیز ها بیرون اومد فقالت یکی از اون مردی که نشسته بود یه چیزی گفت میگه فلطا ما هذا لك رجل یک از اون مردی کنجا بود یعنی این کنیزه بود. مردی از اونجا یه چیزی میگه اون مرد سیلی سیلموزل زیر گوشه اون کنیز فقال له سویدون مقرن سویدون مقرن اینجا این حدیث رو یاد میکنه چه اینو میگه حالا اینجا چندی مسئله هست مثلا اول انکاره منکره یعنی صحابی ساکت نشد تعارفی داشته باشه حق بگی و ده انکار مون بشه یعنی این شخص فعل منکری رو انجام داده وضیفه ما هست که انکار بکنیم دوز دوزی کرده حد روش اجرا میشه حق سیلی زدن نداری شرح چرا چطور دوزی کرده شرح حرام کرده این دیگه چونه زنی نمیخواد که مثلا ما بیا با شرع چونه بزنیم که آها مجوز بگیریم حد وسیله گذاشته که چطور شلاق بخوره در حد زنا کرده یا فعل انجام داده که مستحق شلاق مثلا مشروب مفیده اینجا شرط مشخص کرده که چطور چند ضربه بخوره اما با اینکه سری زده بشه شرط من کرده خب سوید من مقرر چی میگه میگه الاطم توجهه از صورتش زدی این کار. از باب انکار صابت تویخ از صورتش سری زدی لقد رایتونی سابع و سبعه من اون هفت نفری بودم از اون هفت تنی که اونجا بودن هفت نفر بودن من یک از اون هفتن بودم و ما لنا خادم یک خادمی بیشترم نداشتیم یک برده بیشتر نداشتیم یک یعنی اینجا این عدد را یاد میکنه که شدت حاجتش اون را نسبت به اون برده یاد بکنه یعنی ما محتاج اون برده بود یعنی تعداد برادر تو منزل بودیم و نیاز داشتیم کسی کارهای ما رو انجام بده میگه فلغا ما بعضونا یک از ما از اون هفت نفر برادر سیلی میزنه به اون برده میگه فعمره النبی صلی الله علیه و الله صلی الله علیه می‌گه باید آزاد بشه حالا باید که گفتیم باید این دستور تن بر امر اینه که بر وجوده ولی خب اینجا دستور از باب ایجاب نیست از باب واجب کردن بر اونها نیست چرا حالا گفتیم در لفظ دیگری اومده که رسول الله صلی الله علیه و اینها میان از اشتغاظا میکنن که کسی نیست که دیگه کارمون انجام بده که دیگه راه خواهیم خون چنانچه در حدیث بعدی اومده که سبب کنم برش کاراشون که یعنی به اتمام رسید یا حاجتشون که براورده شد بعد آزادش بکنن این قضیه آزاد شدن اگر علال الفور بود باید همون لحظه آزادش میکردن ولی خب میان چونه میزنن با رسولت هساسم که یکم محلت بده که کاراشون رو به اتمام برس بعد آزادش بکنن که رسولت هساسم بهشون اجازه میده بر حدیث بعدی وقال قال المؤلف رحمه الله و حدثنا مسددون قال و حدثنا یحیبن سعید عن قال حدثني سلمة بن هيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال له اقتص كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلو سبيلها ان حديث را معاويه ابن سويد سويد بن مقرن نقل من اس بدرش معاوية ابن, ابن سويد ميجي لطمت مولا لنا ففر يكاز بردغاني كيش ما بود سيلي زدم زيري بشش ميجي فرار كرت فدعاني أبي فقال بدر يعني سويد بن مقرن شنو جاء الحديث قبلي اومده مياد همون حدیث را اینجا برای پسرش هم نقل میکنه میگه صدا میزنه اون برده که فرار کرده بود بیا خصاس تو بگیر سیری زن بزن زیری گشش. خصاس بعد میاد چین نقل میکنه مقرره می میگه نه والدم مقررن س ه تا برادر بودیم بر زندان مقررن پدرشو هفت تا برادر ل نه خاادمون فلات یک برده داشتیم یکی از ماها ها او را کوتک میزنهیع یعنی سیری میزن زیری گشهش پدرک هر دلالک نبی صلی الله علیه و سلم فقال این بازگوش شد به رسو که سر کاری انجام شده یعنی این برده سیلی خورد شما اینجا دارید سیلی زدن زیر گوش این برده تو باب عقیده هم شما در صحیح بخاری دارید اون کنیز سیلی خورد بعد رسول الله صلی اللہ علیه و سلم میگه بیاریدش یا الله کجاست میگه الله بالای آسمانه که بعد ازش به اونم آزاد بشه کفاره است یعنی این جرم شنیعه اینقدر این گناه کبیره هست که کفاره شده آزاد شدن اون برده گناه کبیره ای هست که این چنین کفاره سختی براش گذاشته شده برده قیمت داره کنیز قیمت داره قیمتش خیلی گرون باز خب اینجا دستیو داده شده که در ازای اون سیلی خوردن اون برده آزاد بشه میگه فقال مورهم فلیعتقوها بهشون بگید یعنی اون هفت تا برادر یکی از اونها میاد این واقعی رو میرسونه به رسول الله صلی الله علیه و سلم که اینجوری حادثه رخ داده بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه پس اون برده ها رو آزاد بکنی فقیل نبی صلی الله علیه و آله لیس لهم خادم غیرها خادم دیگه نداره برده دیگه نداره کاراشو انجام بده قال فليستخدموها ازش کار بگیرن فید استغنوا خلوا سبیلها وقتی که بی شدن ازش او رو آزاد میکنند او را آزاد بکنم در روایت دیگر سه در صحیح مسلم آمده فلثم لطمها اصغرنا و که مثلا نو ما به سیلی میزنه میگه فردو کرا ذلك للنبي صلی الله علیه و سلم یعنی قضیه بازگشت بر اساس رسلم بعد فرمودم مرهم فلی عتقوها ما این حدیث سوید هم در روایت دیگری هم داریم مثلا شما این روایت سوید در سه تا واقع ازش نقل شده حدیث قبلی حدیث حلال بود بعدم حدیث معاویه فرزندش بعدی هم داریم بله قال مؤلف رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا الشعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك فقلت شعبة قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرر المزني, المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة رأيتني وإني سابع سبعة أخوة على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا الا خادم فلطمه أحدنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه برداشتی که این صحابی میکنه از امر رسول الله الله علیه و وسلم چیه وجوب بر امر وجوبه یعنی اگر رسول الله الله علیه و وسلم دستور دادم به چیزی واجبه که تو اجراش بکنی مادامی که در علماء پرانتز گذاشته در ادم نباشه از کجای وجوب را گرفتن فرموده الله جل شانه در قران فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فليحذر الذين يخالفون الامر بر حذر باش اونهایی که سرپیچی میکنن از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا امر امر نیست امر بر حذر باش عقوبتا براش گذاشته اگر سرپیچی کردی چی میشه دچار فتنه میشین تصيبهم فتنه او يصيبهم چی عذاب الیم عذاب دردناکی بش دوچار بشید بر حذر باشی اگر گناه نبود اگر مرتکب حرام نمیشید در مخالفت با امر رسول الله صلی الله علیه عذاب نه عذاب چه موقع می‌بینی که مرتکب حرام بشی نه امر مکروهی یا مباحی را انجام داده باشی خیر کارت حرام بوده مستحق چی هستی عذابی؟ دردناک امر جایی به انجام دادنه و امر جایی به انجام ندادنه امر به انجام دادن وجوبه امر به انجام ندادن چیه حرامه راحتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اعفو لحه اعفو اعفو چیه فعل امره ریش بزریت بلاین کنید خب این فعل دلاد بر چی میده دلاد بر وجوب دلاد بر وجوب چه موقع ما میتونیم بفهمیم که این اعفا و این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم به اعفا کردن ریش دلاد بر وجوب نمیده باید قرینه بیاد باید قرینه بیاد یعنی قرینه یا از فعل رسول الله صلی مثلا چنانچه مثلا شما دارید رسول الله نه میکنه از استقبال و استدبار قبله رو و پشت قبله قضیه حاجت کرده خب بعد فعل خود رسول الله سلم در بنیان میاد که این قضیه ای را استثناء میکنه از خلا و اون فضای باز یا باید فعل بیاد یا باید قول بیاد یعنی صارفی از قول خود رسول الله سلم بیاد که دلالت بده اونجا اون امرش بر نیست چه ماجعه اونجا بخاری برداشت کرده بود چون صارفی بود صارفه چون چی بود احتیاج و حاجتشون. ما اگر آزاد بکنیم ما خودمون گرفتار میشیم. خب رسول الله مثلا بهشون مهلت میده مهلت میده که بعد از اتمام کار اون برده اون برده آزاد بشه با خود سوعید همشین برداشت میکنه یعنی دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم بروجوب بر وجوب میفهمه میگه ما علمت ان السوره محرمه شخص مردم از سیدی میذنه شخص دید که بعداش را سیلی میزنه بعد بهش میگه سوید اما علمت ان الصوره نمیدونی که زدن از صورت حرامه میگه الا همون حدیث رو دوباره نقل میکنه من هفت نفر از اون هفت تا برادر بودم در زمان رسول الله صلی الله علیه و یکی از ما برداش را سیلی میزنه تو در روایت مسلم داشتیم کوچکترین ما بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و دستور میده که آزاد به شما برده از با کفاره گناه اون برادر که مرتکب شده. اینجا یک مسئله دیگری هم هست این حدیث در این روایت اونم این که اینجا شما اقرار به گناه دارید. اقرار به گناه دارید. اصل بر اینه که انسان گناهشو نه کل امتی معافه الا المجاهرون. هر فرد از امت من الله شاید ازش گذشت بکنه، او را ببخشه، عقوبت نکنه مگر کسی که مجاهره به گناه بکنه. یعنی بیاد گناهی مرتکب بشه و بعد بیاد اعلام کنه. خب یه گناه مرتکب شده، پس چه داره میگه؟ از با و بیان حکم شرعی میخواد حکمی رو ابلاغ بکنه هم حرمت سود زدن هم کفاره اون کسی که چین گناهی را مرتکب میشه که درمانشیه علاجشیه کفارشیه از باب بیان اون حکم اینجا این صحابی این کار ناشایس را که مرتکب شده یاد میکنه اینجا در این حدیث بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنه فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أي قال لا فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه حديثة الزازان أبي عمر حديثة الزازان أبو عمر نز عبد الله بن عمر بودين كنا عند ابن عمر يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره يكاز بردگانشو کتک زده بود اون برده صداش میزنه که بیاد رو بالا میزنه از همونجایی که شلاغ یا کتکش زده بود میگه فکشف عن ظهره پیرانش از پشت سرش بالا میزنه که روی شونه‌هاش و اون کمرش نگاه بکنه اثر اون کتک هست یا نیست میگه فقال ايوجعك دردت میاد بخاطر اون داری که خوردی یعنی قاله لا و گفت نه ندردم نمیاد فاعتقه بو وجود دردش نمیاد یعنی دیگه آزادش میکنه عبدالله بن عمر رضی الله عنه و بردش رو آزاد دیگه ثم رفعا من الارض چوب افتاده بود از روی زمین بلند میکنه عبدالله بن عمر فقالا مالی فيه من الاجر ما يزن هذا میگه در مقابل این کاری که انجام دادم فکر نکنید پاداش دارم اندازه این چوب من عجر پاداش میشه الله نداره. یعنی سر به سر شد گناه مرتکب شدم بينما كفوريهم قناهم وقلت يا عبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ لماذا تقول هذا؟ يا عبد الرحمن يعني عبد الله عبد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال شنيدم كه الله صلى الله عليه وسلم يفرمايا من ضرب مملوك و حداً لم يأته كنسي كتك بزنه برداش حداً نبوده يعني قناه مرتكب شده باشه كمسلاً مستحق شلوغ باشه أولط موجه أنا قد نقول كتك زري که از حد اون تنبیه هم گذشته خصوصا وقتی که یعنی اون کوتک کوتکه سختی باشه اون چنان کتکی که به شخصی میزنن که مرتکب گناه کبیره ای همچون مثلا مشروب خوری باشه خب اون شخصی که مشروب نوشیده باشه شلاق میخوره حالا کسی بیاد بردش را آنچنان چنان که در حد شلاق میخوره شلاق بزنه یا از سورتش سیلی بزنه این داره عبدالله بن عمر رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و در روایتی و فی لفظ ملطم عبده و ضربه حدا لم یأته و ضربه حدا لم یأته یعنی کسی که از سورت بردش بزنه یا اون بردش رو کتکی بزنه کتکی که از باب حد انجام میشه و اون شخص مرتکبه اون گناهی نشده که مستحقه اون حد باشه کفاره شیف کفارته ان يعتقه کفری اون آزاد کردن اون برده هست حالا اینجا خود عبدالله الله ابن عمر در این روایت شما دارید اون چیزی که سبب میشه خودش رو توبیخ بکنه اینطوری و سرزنش بکنه آثار اون کوتک کنید کوتک زده خب شر اجازه داده اسباب تعذیب چه فرزندت و چه بردت و چه کنیزت کوتک بزنی و چه همسرت کوتک زدن شر مجاز شده مثلا در بحث زناشی، بحث قرآن داریم که از باب اصطلاح زنی که نشوز میکنه، کتک بخوره. نوع کتک زدن مشخص شده. بچه حسب همینطور نوع کتک خوردن مشخص شده و سن کتک خوردن مشخص شده. بچه بالای 10 سال. مرسویانكم بالصلاه في السبع و ضربوهم في العشره. وترهم الشيخ الباني رحمه الله میگه میگه این حدیث دلالت بر این داده که بالاترین حکم شرعی که کتک بر اون از نماز ما واجب تر از نمازه. حکمی می میگه برای نماز بالای ده سال اجه شده یعنی فت سال بهش بگید نماز بکنه ه سال بگید نماز بکنه. نه سال هم می تو ده سال نخون بزنید یعنی زیر ده سال تو حق نداری ککش بزنید. میگه زیر ده سال برای نماز که اینقدر حق ندارین بزنید. از باب اولا برای غیر نماز حرامه و چه زیر ده سال کوک زدن حرامه. خب این حکم حکم زدنه می ازباب تعدیب اجازه داده شده ولی که نه اون تعدیبی که ازباب حد روی فرد اجرا میشه نه اون کتکی که جای اون دار و جای اون شلاقه مثلا روی تن اون بچه یا اون همسر یا،, یا اون برده یا کنیز بمونه اینجا وقتی که این آثار کتکش رو میبینه حلی برای کفاره این گناهی که مرتکب شده که زیاده روی کرده در کوتک زده کفاره را جز آزاد کردنش نمی‌بیند عبدالله بن عمر رضی الله عنهما و بعد اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و یاد میکنه که این چینی فهمیدن که در این کارم خودش را عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بی پاداش می‌گیره یعنی کاری که انجام دادن محض کفاره بود یعنی که روز قیامت اون برده نیاد و حقی به گردن من داشته باشه. اینجا محاسبه هست، اینجا محاسبه است، اینجا پول نیست. این برده رو میتونست با قیمت گذافی بفروشه برده قیمت ماشین داشت تا سواره و بهترین ماشین های امروز خصوصا برده قیمت داشت برای خودش امروز این برده یک اشتباهی انجام داده کوتک خورده خب یکم زیاده روی کرده در کوتک زدن دردش هم نمیاد اون بعدا صداش میزنه میگه درد توئه میگه نه فقط آثاره یکم اون شو که زده از پشت کمرش اون اثر اون چوب فقط مونده جاش مونده از وجدان میگیره خودش رو میکنه نا محاسبه چی میشه؟ اگر این روز قیامت بیاد حق به گردن من داشته باشه فوراً با خودش حساب و کتاب میکنه راحل تنها راحلی که برای خودش میبینه برای جبران این اشتباه گنا گناه چیه؟ آزاد بشه این پولو نخواستم عذاب نمیرم پولو نمیخوام گفتم میتونه بفروشه پول گذافه هم گیرش بید نه پول نمیخواد یک سیلی هست خاطر یک سیلی خودشو میکنه به یک سیلی تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این محاسبه نفس این درسی که باید ما از این احادیس بگیریم از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنای این شأنشون هنانی که الله اینجوری مدحشون در قرآن میکنه رضی الله عنهم و رضوان الله ازشون راضی و خوشنوده به خاطر این اینجوری تربیت شدن اینجوری خودشون تربیت کردن و این شأن و مکانتشون و لو میبرما نیست اگر اونها رو دوست داریم اونها محبتشون رو از جان مالمون و از فرزندانمون محبتشون بیشتر داریم قال المؤلف رحمه الله باب قصاص العبد حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسن رضي الله عنه قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة حشتر يكمين باب زباب صحيح هذا مفرد باب قصاص العبد قصاص قصاص بعده یا در این دنیا حقش رو اون بعد یا روز قیامت حقش پایمال نمیشه حق و حقدار میرسه شرع دین اسلام دار دار حق نداری در حق کسی ظلم بکنه حتی اگر بردن باشه سدوسی و چارمین حدیث حدیث حمارمیاده رضی الله عنهما میگیاد لا يضرب أحد عبد له اینجا خب سخنان یک صحابی داریم که اشتباهی نیست که مرفی رو پیدا میکنه و اون حدیث قبلی هم که واضح بود در همین معنا بود کسی برده شو نزنه و هو ظالم الا و تو هم ظالم باشی یعنی برده کاری نکرده باشه تو کتکش بزنی و یا سیلی بزنی چنانچه در حدیث قبلی داشتیم حدیث عبدالله بن عمر الا اقید منه يوم القيامه يوم قیامت مگر بی روز قیامت ازش قصاص گرفته بشه زدی بوت خود آماده بکنی به اون کتک روز آخرت که درد اون روز با درد این دنیا قابل قیاس نیست. عذاب اونجا با عذاب دنیا قابل قیاس نیست. اینجا یک وعیده، یک حشداره، یک حشداره برای هر پردی که قدرت و توان ظلم رو داره میتونه ظلم بکنه که دست از ظلم رو کشه. دست از ظلم نکشیدی باید بدونی که الله در کمینت نشسته. إن ربك لبل مرصد الله غافل أسب عن دجانش نيس ولم يدر حديث بعدي إن مسألة بازن تكرار مشه قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان رضي الله عنه فإذا على فدابته يتساقط من الآري وقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك سادسيو فانجمين روايات كدار سهيدا مفراد داريم روايات أبي ليلهاس يك خرج سلمان سلمان فارسي فإذا على فو دابتي يتساقط على فو على فك توسل الخضمن أمقفتي مشاقية وصفزه يك جامباري مشاقباري هيو يتساقط من الآري آري همون استبله جایی که حیوانات توش نگهداری میشن میگه که سلمان وارد استبلش میشه بعد میبینه که برد کوتاهی کرده 알파 داره میریزه خب البته وقتی که خوسنجلوه جلوی حیوان داشته باشه خصوصا, خصوصا بعضی از اون 알파 یا اون حبوبات مثل جو خوسان برره وقتی که زیاده روی میکنه در خوردن جلویش ریخته بشه خودش دیگه نمیدونه میخوره میخوره بعد دفع میکنه میترکه خاطر همین حیون بعد به مقدار معینی از اون اولوفه یا از اون چیزایی که بهش داده میشه مصرف بکنه خب اینجا سلمان فارسی اون خادم و اون برده را صدا میزنه بعد بهش میگه لولا لا انی اخاف القصاص اگر من از قصاص نمیترسیدم ترس از این دارم که قصاص میشه روز خیامن میگه اوجعتو کتکت میزدم اصل وجعت درده یعنی کتکت میزدم که دردت بیاد که بدونی چه کاری کردی که دیگه تکرار نکن این کارو میگه لولا انی اخاف القصاص گفتیم چرا چه حدیث قبلی باشه عبدالله بن عمر هم حمیتو رضی عنه ترس داشت از اینکه قصاص بشه روز قیامت اینجا ورع صحابه هست و کزم غیزشونه شونه خش بردن اون صحابی اینجا سلطه داره چیرگی داره بر اون بردش میتونه کتکش بزنه متمکنه برش و اینجا اسباب و دباعیه خشم فراهم شده یعنی این حیوانات شاد بمیرم با این الف خوردن یا اون الفات تلف بشه خسارت به زاد زیان به وارد کرده خب میگم اینجا اسباب و دواعی خشم هست ولی که اینجا ای صحابی به خاطر ترس از آخرت خشمشو فرو می‌بره چون می‌ترسم از عقوبت الهی چون می‌ترسم از قصاص الهی مجبورم عفو کنم وگرنه کوتکت می‌زدم وگرنه کوتکت میزدم می‌ترسم اینها درسای تربیتی هست برای من و شما که یاد بگیریم اونو فرو ببره کسن وقتی که ظالمی در حق ما کسی مرتکب میشه وقتی کسی بدی به ما میکنه خشممونو فرو ببریم حالا میاد ان در بحث خشم ما احادیث راهیم داشت خشم یک مسئله فطری هست نمیتونه بهانه باشه که یک شخص بگه نه من از دوره در میرم من دست خودم نیست نه خشم شر اسباب و به دست داده که خشمتو فرو ببری ب خاطر همین الله ماته میکنه کسانی که خشمشون رو فرو میبرن بالکاظمین الغیظ والعافین عن الناس الله توصیهش به کزم غیظه اگر انسان نمیتونه دستور نمیداد الله بهش که خشمشو فرو ببره انسان میتونه خشمشو فرو ببره باید خشمتو فرو ببری اسباب و راهکارها هم در اختیارت گذاشته برای فرو بردن خشم که شاء خواهد اومد بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابو الربيع قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا العلاو عن أبيه عن أبيه ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدّن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجمّاء من الشاة القرناء سدسيو الشيشومين حديث هذا حديث أبي مفراد حديث أبيه رضي الله عنه كمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ فَلْمَ يَدْأَتُ أَدْنَنَّ الْحُقُوقَ إلَى أَهْلِهَا لا الحقوق حدا کردن حقوق. حق و حقوق را به مستحقینش می رسونید. هر کسی حق و حقوق داره. همسرت، بردت، کنیزت، بچهت، پدره، هر کسی از اون افرادی که دوره برای ما هست، حق و حقوقی داره. از حق حقوقشون که زل نشن، کتک نخورن. که مناسبه با بابی که بخاری گذاشته. این حق رو پایمال کردی، کوتک زدی. چه حیوونت، چه بردت، چه کنیزت، چه همسرت؟ مستحق کتک خوردن نبودن کتک ذری یا اون بر صورت بود یا اون کتک از حد تجاوز کرده بود بدون که در ازای اون قصاص قایی داشت طور که چنانچه در این حدیث داریم که رسولات سرسان حتی یقاد و لشت من الشت القرنه همون تک روز قیامت قصاص حیوان از حیوان گرفته میشه قصاص اون حیوان بیشاغ از شاخدار گرفته میشه حیوان بیشاخی از حیوان شاخداری شاخ خورده. قصاصش را از اون کسی که بهش ظلم کرده میگیرن. از اون حیوانی که بهش ظلم کرده. قصاص حیوان از حیوان گرفته میشه روز قیامت. چه برسه به انسان؟ اینجا حیوان مکلف نیست. حیوان مکلف نیست، تکلیف داده نشده. ولی با این وجود در صحنه محشر، در روز قیامت قصاص میشن. قصاص میشن. این قصاص از مقابله است، از مقابله است، از عذاب توبیخ و عذاب تکلیفی نیست که در ازای تکلیف عذاب ببینه نه از باید مقابل است اینجا اومده حیوان شاخدار به حیوان بیشاخی ظلم کرده باید اون حیوان بیشاخ حقش را از اون شاخدار بگیره روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم با ابو ذر بودن این حدیث بوریر از حدیث دیگر داری با های معنا از حدیث ابو ذر قفاری را دل آم میگه را رسول الله صلی تو تا حیون دیدی به بهیه شاخ میزنن فقال یا بعض یا عب تن فیمتتن تااقحان میدونید چرا این اینطوری با هم دیگه درگیرن پل تله خفتم نه قال وا که ربییهدارییک. الله من میدونه که چرا؟ اینها با هم دیگر اینطوری درگیرن به هم دیگر دارن شاخ میزنن. و سییق قیبه نه هم یملقیامد روز قیامتم الله قزوات میکنه بینشون شد که اینها چرا همدیگه رو دار شاخ میزنن؟ این حدیث و شیخ خالبانه بحیمه الله تحصیح میکنه در سسلی سعیه میاره حدیث شماره 1588 بعد فوایدی را برداشت میکنه خصوصا در بحث پایمال کردن حقوق حق حقوق بایستان باید بدونه یکی از مشکلاتی که ما داریم در بحث حق و حقوق اینه که ما آگاهی به اون حقوقی که بر ما هست نداریم نماز آگاهی به اون ابزاری که آرتش در خوش چه در درست ادا کردن نماز، باید بلد باشید نرفتیم یاد بگیریم. اون عمل رو باید محققش را درست ادا بکنیم. بفهمیم. رسول الله صلّى الله عليه و سلم تو سجده پهار رو هم دیگه چسب میاد. تو تشه انگشت دانگش رو بالا ورده. صلّى را کمره ایت مونه اصلی. رسول الله صلّى الله عليه و سلم میفهمان نماز میکنه. اون چه من نماز میکنه. بازیفت. صلّى امره بتوک ایمومین که نمازه درست باشه. مثل رسول الله صلّى الله عليه و سلم. یاد بگیریم از کار، اون دعای السفطاح. یاد بگیریم. در بحث ازدواج حقوق حق همسره ازدواج می‌خوای بکنی باید بفهمی چه حق و حقوقی به گردن مقابل همسرت زنم همیتو آداب داره احکام داره حیوان آداب و احکام داره اینطوری نیست شهر برای هر چیزی قانون گذاشته برای هر چیزی آداب و احکام گذاشته باید تو این آداب و ها رو یاد بگیری چون اگر یاد نگیری در ظلم میفتی. پای مالش می‌کنی پای مال کردی در مقابلش روز قیامت محبت خواهی داشت نباید انسان اعمالش را ناچیز و کچیک بشماره. تک تک اعمالت تو در مقابلش محاسبه میشی. بدون اون جایی که اون کسی که جلوه بهته و در مقابلش برگردن تو حقی داره. حالا پدره، حالا مادره، حالا همسره، حالا بچه هست، دوسته، رفیقه، برده هست، کنیزه. بدون دست از با خطا بکنید. دست از با خطا بکنید. حقش را پای بکنی، بکنین فمن یعمل مثقل ذرت خیران؟ یرا مسقال مسقال حساب میشه چه در مقابل اون خنده؟ چه در مقابل اون احمد. حتی یک اخ کافیه که الله سوره را نازل میکنه با فرمودش عبسه و توله نابیناس ندیده چهره رسول الله ندیده امن مکتوب نابیناس ولی که بای وجود الله دار میده ای محمد علیه حق نداری خم ببرو بیاری در مقابل مؤمنی نابیناست ندیده حق نداری وی للمطففین وی وای بر اون کسی که حق از دیگران را در خرید فروش معامله پایمال میکنه کمتر به مشتری میده وای بر تو اگر یک ذره حقش پایمال شد پول داری میده برای یک کیلو پیاز یک گرم کم شد وای بر تو خیلی چیزا هست در زندگی انسان حق و حقوق ها که شاید انسان نادیده بگیره یا ناچیز بشماره خودش رو محاسبه نمیکنه وای بر اون انسانی که خودش رو محاسبه نکنه و صحابه ما یاد بگیره چنانچه حدیث سلمان داشتیم حدیث عبدالله بن عمر داشتیم انسان با خودش رو محاسبه بکنه قبل از اینکه محاسبه بشه در روز قیامت شخصی اون عایشه میگه به معنا میگه شخصی اومد نظر رسول الله و سلم نشست گفت که رسول الله ان لی ان لی مملوکی مردگانی دارم یک ویبوننی و خونوننی خیانت میکنن دروغ میگن و یعسوننی سرپیچه از دستوراتم میکنن و اشته مهم مضرهم دشمنم شون میدم کوتکشو میزنم فكيف انا منهم ناصزا بهشون میگم آیا سر به سر میشه یعنی دروغ میگن خیانت میکنن و الی و منم کوتک میزنم و ناصزا بهشون میگم آیا این بگردنم دیگه چیزی هست یا نه سر به سر شده به قول معروف دیگه کفاره شده قاله. صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك حساب مش چقدر خيانات دارن درو گفتن زرپچه کرده وعقابك إياهم وعقوبتك كوتاكيت الزليم حساب مش فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لك ولا عليك اجر ان مقدار عقوبته به اندازي گناهان اونها بوده سار به سر مش كفاف نه بر گردن تو چيزي هست نه بر وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك اگر عقوبتتو كتكتو تنبیهتو كمتر بوده از اون گناهان اونها تو فضلی بگردن هاداری میتونی ببخشی میتونی نبخشی يعني تو عفف کردی و در مقابل این عففت فسیلت داری الله عجرت بدي اما وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم واي باتو اگر این عقوبتت بشتر از اون گناهانشو باشه اقتص لهم منك الفضل مقابل اون کتاکای اضافه که خوردن روز قیامت قصاص میشه. قال فتنحر الرجل فجأ يبكي ويهتف شخص به گوشه یک گوشه می‌نشینه شروع کردن به گری کردن گری وزاری صحابی رسول الله صلی الله عليه وسلم شروع کردن به تصور این ایشون رو داشته باشید این صحابی میگه که دروغ میگام خیانت میکنم منم کتک میزنم وقتی که که رسول خدا اگر این کتکت بیشتر بوده از اون گناهان اونها تو قصص میشه این صحابی فورا خودش رو محاسبه میکنه یک گوشی میشه شروع میکنه به گریہ کردن اونجا از که رسول الله صلی الله علیه و سلام این آیه را از قران میکنن و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیء موازین بقسط عود لوناه زر روز کسی زول نمیشه فقال الرجل والله يا رسول الله ما اجدولی ولهم شیئن خیر من مفارقتیم یا رسول الله هیچ چیزی برگردن خودم نیبینم اینجا جز اینکه اونها رو همه آزاد بکنن اشهد انهم احرار كلهم هرچی برده دارم همشون آزاد همه برده کانش آزاد میکنه همه اون دارائش مال اموال اون برده همه را آزاد میکنه چرا؟ شنن بخضروز قيامات عقوبات بشيء الحديثات عن سنانة المزيبة والبنيام تأسيه كذا قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمرار عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضرب اقتص منه يوم القيامة وحدثنا فليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا ابو العوام عن قتاده عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامه يو مين حديث حديث رضي الله عنه الله له ولهم قالك الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا ظلما ظلمي در حقش مكونا بوانكو تقزدنا اقتص <تصفيق> منه يوم القيامة اقتص منه يوم القيامة روز قيامات هزيش قصاص كرفتي مشه چنو چه در حدث قبل داشت سبحانك الله وحمدك سبحانه وحمده وصلا الله محمده وعلى الله